روشنی تلعت تو ماه ندارد پیش تو گل رونق گیاه ندارد گوشه ابروی توست منزل جانم خوشتر از این گوش پادشاه ندارد تا چه کند با رخ تو دود دل من آینه دانی کتاب آه ندارد شوخی نرگس نگر که پیش تو بش گفت چشم دریده عدب نگاه ندارد دیدم آن چشم دلسیه که تو داری جانب هیچ آشنا نگاه ندارد رتل گرانم دهی مرید خرابات شادی شیخی که خانگاه ندارد خون خور خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد داد خواه ندارد گو برو و آستین به خون جگر شوی هر در این آستان راه ندارد برو و آستین به خون جگر شوی هر که در این آستان راه ندارد نیمن تنها کشم تطاول زلفت کیست که او داغ آن سیاه ندارد حافظ اگر سجده تو کرد مکن کافر ای کافر عشقی سنم گناه ندارد